این داستان شش خدمتکار یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون در روزگارای خیلی قدیم ملکه پیری زندگی می کرد که جادوگر هم بود دختری به زیبایی دخترش روی کره زمین پیدا می شد پیر زن مدام به فکر این بود که مردا رو فریب بده و به قتل برسونه هر خاستگاری که برای دختر ملکه میآمد مجبور بود به معموهاش پاسخ بده معاموها همیشه پیچیده و سخت بود و بی جواب میموند و سر خاستگار بخت برگشتم بر باد میرفت چون زیبایی دختر حد و حسری نداشت و زبانزد همه بود بازار پیرزن داغ بود و جوونای نگونبخت مرتب به دامش میفتادند دست بر غذا، پسر پادشاه کشور همسایه که آوازه زیبایی دختر رو شنیده بود، بیپروا تصمیم گرفت بخت خودش رو آزمایش کنه. اون نزد پدرش رفت و اجازه خواست که به خاستگاری اون دختر بره. پادشاه گفت هرگز با این تصمیم تو فقط به استقبال مرگ میری. پسر با شنیدن جواب پدر معیوس و ناراحت شد. و بالاخره ناراحتی و رنجوریش به یک بیماری سخت و طولانی تبدیل شد پزشکا از درمان جوان باز موندند و کم مونده بود که به کام مرگ فرو بره پادشاه که میدید هیچ چاره برای نجات جوان باقی نمونده نزد پسرش رفت و گفت حالا که راه درمانی پیدا نشد برو و بخت خودتو امتحان کن شاهصاده که با شنیدن موافقت پدر انگار نیروی تازه گرفته بود، جون گرفت و بلافاصله از تخت خواب بیرون پرید و آماده رفتن شد. طولی نگشید که به براه افتاد. کمی که رفت، چیزی شبیه به تپه از علف خشک شده نظرش رو جلب کرد. ولی وقتی نزدیکتر رفت، متوجه شد اونچه که دیده، مردی بوده که هیکلی به اندازه یک تپه کوچک داشته. مرد که روی جاده دراز کشیده بود منتظر مند تا شاهزاده نزدیک تر بشه اون وقت بلند شد و گفت اگه به کمک کسی نیاز داری منو برای خدمتگذاری همراه خودت ببر شاهزاده گفت آدمی به درشتیه تو چه کاری میتونه برای من انجام بده مرد جواب داد به هیکل من نگاه نکن به اندازه هزار تا آدم معمولی از دستم کار برمیاد. شاهزاده گفت باشه شاید به کمک تو نیاز پیدا کنم این ترتیب مرد که فتی نام داشت یعنی چاق همراه ارباب جدید را افتاد. کمی که رفتن به مرد دیگه ای برخورد. اونم روی زمین دراز کشیده بود. شاهصاده از اون که گوشش رو به علف ها چسبنده بود پرسید چیکار میکنی؟ اون مرد جواب داد دارم گوش میکنم. شاهصاده با کنجکاوی پرسید با این دقت به چی گوش میدی؟ مرد در جواب گفت هیچ صدایی تو دنیا نیست که من نتونم بشنوم حالا هم دارم به صدای رشد علف ها گوش میدم شاه ساده گفت حالا که تو همچین قدرتی داری به من بگو که در خونه اون ملکه پیر که دختری بسیار زیبا داره چی میگذره مرد جواب داد صدای شمشیری رو میشنوم که گردن خواستگاری ناکام را از تنش جدا کرد شاهزاده به اون مرد که هر صدایی رو تو دنیا میشنید گفت همراه هم بیا تو حتما به درد من میخوری حالا دیگه سه نفری را افتاده بودن همونطور که میرفتن به کف پای بزرگ و ساقهای درازی برخوردند. مدتی راه طی کردند تا به بدن اون رسیدن بعد هم به سرش شاهزاده با تعجب گفت عجب قد درازی داری؟ مرد بلند قد جواب داد؟ کجاشو دیدی؟ این تازه پاهامه اگه تنم رو هم کش بدم هزار برابر بزرگتر میشه. بلندتر از بلندترین کوها. در عین حال من آمادم که همراه شما بیام و در خدمت شما باشم. شاه ساده پیشنهادش رو قبول کرد و چهار نفری راهشون رو ادامه دادن تا به یک مردی برخوردند که یکی از چشماش رو با باند پیچیده بود شاهصاده پرسید چرا روی یکی از چشماتو بستی؟ مرد گفت اتفاقی نیفتاده ولی من جرئت نمیکنم اونو باز کنم چون چشمام به حدی شوره که به هرچی نگاه کنم دو تیکه میشه. اگه فکر میکنین من به دردتون میخورم، خورم آمادم تا با شما همراه بشم. شاهصاده پذیرفت که این مرد شور چشم رو هم همراه خودش ببره. مدتی نگذشت که به شخص دیگهای برخوردن. اون زیر آفتاب نشسته بود ولی همه اعضای بدنش از سرما می لرزید. پادشاه پرسید چطور تو گرمای شدید آفتاب از سرما می لرزی؟ اون شخص در جواب گفت افسوس که من طبعی متفاوت دارم. هرقدر هوا گرم تر بشه احساس سرمای من شدید تر میشه و احساس می کنم سرما تا مغز استخونم نفوظ پیدا می کنه. برعکس هوا که روبه سردی میره من گرم میشه. به این ترتیب نه تو هوای سرد میتونم برای خنک کردن خودم به یخ دست بزنم. چون گرمای بدنم بلا فاصله اونو آب میکنه. نه هیچ وقت میتونم نزدیک آتیش برم. چون بدنم آتیش رو خاموش میکنه. شاهزاده گفت تو آدم حیرت انگیزی هستی. همراه ما بیا. شاید به دردم بخوری. به این ترتیب همگی با هم راهشون ادامه دادن تا به مردی رسیدن که میتونست گردنش رو اونقدر بکشه که اون طرف تپه های مجاور رو هم ببینه شاهزاده ازش پرسید با این دلواپسی به چی نگاه میکنی؟ اون مرد جواب داد چشمای من انقدر تیز بینه که قادرم تمام جنگل ها، دره‌ها، ها، تپه ها و در واقع تمام دنیا رو ببینم شاهزاده بهش گفت را بی همراه من بیا که به آدم مثل تو خیلی نیاز دارم شاهزاده با این شش خدمتکار به راهش ادامه داد تا به شهری رسید که ملکه پیر در اون زندگی می کرد وقتی وارد شهر شد بدون اینکه نام خودش رو فاش کنه نزد ملکه رفت و گفت اگر با اون اونو دخترش موافقت کنه حاضر هر کار یا وزیفهی که بهش محول بشه انجام بده زن جادوگر از اینکه بهزودی میتونست همچین جوون زیبایی رو به دام بندازه خوشحال شد ملکه به جوون گفت سه تا کار بهت محول میکنم اگر از احده اونها بر بیای ازدواج تو با دخترم بلا مانه. شاهزاده پرسید اولین کار چیه؟ ملکه گفت باید حلقه ای رو که توی دریا افتاده رو برای من پیدا کنی شاهزاده به محل اقامتش برگشت و به خدمتکاراش گفت اولین کاری که به ما دادن آسون نیست. باید حلقه ای رو که ته دریا افتاده پیدا کنیم. بیاید با هم مشورت کنیم تا راه حلی پیدا کنیم. تیزبین از روی آب به داخل اون نگاه کرد و گفت من اون رو ته دریا میبینم. حلقه روی سنگ نکتیز افتاده. بلند قد گفت اگه میتونستم اونو ببینم دست می میکردم و اونو بر می داشتم. فتی گفت اگه مشکل همینه که قابل حله. بعد کنار آب دراز کشید و دهانش رو باز کرد. آب رود رو بالا کشید. طولی نکشید که دریا مثل یک علفزار بی آب شد. بلنقد کمی خم شد، حلقه رو برداشت و به شاهزاده داد. شاهزاده هم اونو به دست ملکه رسون. ملکه که سخت تعجب کرده بود قبول کرد که این همون حلقه اونه. بعد گفت خب، اولین رو که خوب انجام دادی. حالا بریم به سراغ دومی، اون سیصد ست رست رو جلوی چراگاه قصر میبینی؟ باید همه اون گاوا رو با گوشت و استخون و پوستش و حتی شاخش بخوری و بعد به سراغ 300 بشکه نوشیدنی موجود در انبار قصر بری و همه اونا رو بنوشی اگر به اندازه سر سوزنی از گاف ها یا قطره از نوشیدنی ها باقی بمونه زندگیت برفناست شاه ساده پرسید هیچ غذایی در تنهایی نمیچسبه. آیا اجازه دارم کساری را به مهمونی دعوت کنم؟ پیرزن با لبخندی ابوس جواب داد. فقط یه نفر رو میتونی دعوت کنی، نه بیشتر. شاهزاده نزد خدمتکاراش برگشت. کار جدید رو با اونها در میان گذاشت و فتی رو با خود به مهمانی برد. فتی اومد و هر سیست و گاو رو با پوست و گوشت و استخون و شاخ طوری خورد که انگار فقط صبونه میخوره. بعد به سراغ های نوشیدنی رفت و بدون اینکه از لیوان استفاده بکنه یکی بعد از دیگری سرکشید. کشید همین که غذا و نوشیدنی تمام شد شاه نزد پیر زن رفت و خبر داد که دومین کارم تمام شده ملکه پیر حیرت زده گفت که تا اون زمان کسی نتونسته که از این مرحله سخت جون سالم به در ببره با وجود این پیرزن با خودش گفت این جوان نمیتونه از چنگش در بره اون مطمئن بود که جوان از انجام سومین کار باز میمانه و زندگیش به باد میره پیرزن گفت امشب دخترم و به اتاق تو میارم باید بازوی اونو به دستت بگیری و تا وقتی بازوش رو گرفتی حق خوابیدن نداری من ساعت دوازده سرکشی میکنم اگر به خواب رفته باشی و دخترم از اتاقت بیرون رفته باشه زندگیتو از دست میدی شاهزاده با خودش فکر کرد چه کار آسونی؟ من به راحتی میتونم چشم و باز نگه دارم. با وجود این خدمتکاراش رو فرا خوند و باهاشون مشورت کرد. بعد گفت در ظاهر کار ساده ولی خدا میدونه چه کاسه ای زیر نیمکاس است. باید احتیاط کرد. چطوره که شما بیرون مواظب باشین کسی از اتاق خارج نشه؟ وقتی شب شد ملکه پیر دخترش رو نزد شاهزاده آورد. بلند قد دستای درازش رو دور شاهزاده و دختر ملکه حلقه کرد فتی هم پشت در نشست تا کیشیک بده به این ترتیب احدی نمیتونست از اتاق خارج بشه دختر و شاهزاده کنار هم نشسته بودن و دختر ساکت ساکت بود نور مختاب از پنجره به صورتش میتابید و شاهزاده محف تماشای زیبایی شده بود شاهزاده تکون نمیخورد همچنان با شور خستگی ناپذیر محو تماشای دختر بود و لحظه‌ای هم پلک روی پلک نذاشت تا ساعت یازده اوضاع احوال به همین شکل بود ولی در اون ساعت جادوگر همه آدمای داخل و بیرون اتاق رو جادو کرد طوری که همگی به خوابی عمیق فرو رفتن در اون فاصله دختر رو از اتاق به جای نامعلوم برد تا ساعت به دوازده همه خواب بودن بعد جادو باطل شد و اونا یکی یکی بیدار شدن. وقتی شاساته چشماش رو باز کرد فریاد زد چه اتفاق وحشتناکی کار من دیگه تموم شد. خدمت کارای وفادارش هر کدام شروع به ناله کردن. ولی تیز هوش گفت من با گوشم محل اقامتش رو پیدا می کنم. چند لحظه با دقت گوش کرد و گفت شاهزاد خانوم توی یه قار در سیصد ست فرسخی اینجاست و نگران سرنوشت خودشه. بلند قد فقط تو میتونی کمک کنی و با یکی دو قدم برداشتن اونو نجات بدی. بلند قد گفت ولی شورچشم هم باید دست به کار بشو موانعی مثل سنگو سخته ها رو از بین ببره. بلندقدر قد شورچشم رو به دوش گرفت و در یه چشم به هم زدن به نزدیکی قار رسیدن که سخرهاش جادو شده بود. شورچشم پارچه ای رو که روی چشمش بسته بود باز کرد. با همون نگاه اول تمام سنگ های روی قار هزار تکه شد و پخش و پلا شد. بلندقدر قد دختر رو از میان خرابه ها برداشت و بلافاصله نزد شاهزاده و بقیه دوستاش برد. اونا از دیدنش خیلی زوغ زده شده بودن چون ساعت هنوز نشده بود. به محض اینکه ساعت زنگ دوازدهر و نواخت پیر زن جادوگر مثل مار به اتاق خزید اون که فکر میکرد دخترش فرسنگ دورتر در میان سخره های قار در یه جای امن و مطمئن بود شازده در اختیارش و دیگه نمیتونه تومش رو نابود کنه با لبخندی ترسناک وارد اتاق شد. ولی وقتی دید دخترش دست در دست شاهزاده در اتاق نشستن از وحشت فریاد زد. بالاخره حریفی پیدا شد که روی دست من بلند بشه. پیرزن جرعت نکرد زیر قولش بزنه و اجازه داد مراسم نامزدی دخترش با شاهزاده برگزار بشه. پیرزن در گوش دخترش گفت: خجالت نمی‌کشی که به ازدواج با فردی عادی تندادی و همسری رو انتخاب کردی که باب ملت تو نیست؟ غرور شاهزاده خانم دار شد و تصمیم گرفت انتقام بگیره. روز بعد دستور داد 300 دسته هیزم روی هم انبار کنند و به شاهزاده گفت: هرچند سه شرط قبلی رو سری انجام دادی، من هنوزم حاضر نیستم باهات ازدواج کنم. باید کسی رو پیدا کنه که روی آتیش این هیزمها بشینه و جان سالم به در ببره. شاهزاده خانم پیش خودش فکر میکرد هیچ که از خدمتکاران جوان حاضر نیست فداکاری بکنه و خودش رو به کشتن بده. در نتیجه اربابشون مجبور میشه خودش رو توی آتیش بندازه و به این ترتیب شرش کم میشه. خدمت کارا گفتند تا حالا هر کدوم از ما کاری انجام دادیم غیر از سرمایی. نوبتی هم باشه نوبت توه سرمایی رو روی بالاترین نقطه تپه هیزم گذاشتن و بعد آتیش رو روشن کردند آتیش سه شبانه روز میسوخت تا اینکه همه هیزم ها خاکستر شد وقتی آخرین شعله ها هم خاموش شد دیدند سرمایی صحیح و سالم بین انبوه خاکسترها نشسته و از شدت سرما مثل بیت میلرزد اون گفت هرگز جایی نبوده که اینقدر سرد باشه و گفت که اگر آتیش همچنان برف بود از سرما یخ میزد. بعد از این ماجرا دیگه بهونه‌ای نمونده بود و شاهزاده خانم زیبا دختر ملکه جادوگر به اجبار قبول کرد همسر مرد بیگانه بشه که اصل و نسب درستی نداشت وقتی که عروس و داماد عازم کلیسا بودند ملکه جادوگر به نگهبانای خودش دستور داد به کلیسا بروند و به هر قیمتی شده دخترش رو به قصر برگردونند تیز گوش که سرتاپا گوش بود به توطعه پنهانی جادوگر پیر پی برد. اون از فتی پرسید حالا چاره کار چیه؟ فتی مقداری از آب دریا رو که قبلا سرکشیده بود سر راه نگهبانای ملکه ریخت و تبدیل به دریاچه شد و نگهبانا توش غرق شدند. وقتی پیر در چه مخمسه گرفتار شده، سوار نظام ها رو فرستاد. تیز گوش که توته جدید رو هم فهمیده بود، با همکارش شورچشم درمیون گذاشت. نگاه شورچشم به صفوف مهاجما که هر لحظه جلوتر می دوخته شد و در یک لحظه همه اونا رو نیست و نابود کرد. بعد از اون عروس و داماد بدون مزاحمت وارد کلیسا شدن همین که مراسم ازدواج صورت گرفت خدمتکاران از ارباب اومدن و بهش گفتن شما به آرزوی خودتون رسیدین و دیگه به وجود ما نیازی ندارین اجازه بدین ما به دنبال سرنوشتمون به سفر ادامه بدیم تازه عروس و دامادم سوار بر کالسکه از قصر پیرزن دور شدند. در نیم فرسخی قصر یه خوکبان از گله خوک نگهداری میکرد وقتی زن و شوهر جوون به اونجا رسیدن مرد به همسرش گفت آیا میدونی من کی هستم من پسر هیچ پادشاهی نیستم من یه خوکبان هستم اون مرد رو با اون گله خوک میبینی اون پدر منه ما دو نفر با هم باید بریم و بهش کمک کنیم کالسکه بیرون اومدن و وارد یه مسافرخونه شدن شوهر بدون اینکه همسرش متوجه بشه به صاحب مسافرخونه دستور داد که شبانه لباس شاهزاده خانم از اونجا ببره شاهزاده خانم بیچاره صبح که بیدار شد چیزی برای پوشیدن نداشت. زن مسافرخونهچی با هزار منت که به خواهش همسرش این کار رو میکرد، لباسی مندرس و کفشی پاره در اختیار شاهزاد خانم گذاشت. شاهزاده خانم فکر کرد شوهرش واقعا خوکبانه و تسلیم سرنوشت شد. پا به پای اون شروع کرد به کار و رسیدگی به خوکها، با خودش فکر میکرد که این مجازات غرور و خودخواهی های اونه هشت روز پی در پی کار کرد و اونقدر خسته و درمونده شد که دیگه نداشت کف پاهاش هم زخم شده بودن بالاخره دو نفر نزد اون اومدن و پرسیدن آیا میدونه همسرش چه است؟ در جواب گفت بله اون یه خوکبانه و حالا رفته نوار و روبان بخره اون تو تا غریبه به شاهزاده خانم گفتن همراه ما بیا تا تو رو نزد همسرت ببریم اونها شاهزاده خانم رو به قصر بردن در اونجا شوهر شاهزاده خانم با لباسی فاخر و شاهانه در سالن بزرگ قصر ایستاده بود شاهزاده خانم اول اونو نشناخت تا بالاخره شاهزاده نزدیکتر اومد سرش رو به سمت شاهزاده خانم خم کرد و گفت من در راه رسیدن به تو رنجای زیادی کشیدم. دیگه نوبت تو بود که کمی در ناراحتی‌های من سحیم بشی. بعد هم طولی نکشید که عروسی با شکوهی برگزار کردن. اون مراسم انقدر با شکوه بود که من قصه هم دلم میخواست اونجا حضور داشتم.